الحمد عليه والصلاة على أهلها وبعد قال الحسين في منا اللهم إنك تعلم أنه لم يكن ما كان منا تنافسا في سبحان ولا التماس من فضول الحقام السلام عليك يا با عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائه عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار السلام <تصفيق> در امت جدم به وجود بیارم و بر اساس سیره پیامبر و امیر المؤمنین عمل کنم در منا ایمان و السلام با یک ادهی از قوم صحبت میکنند به تعبیر امروزی سخنرانی میکنند. در اونجا در قسمت از صحبت های چونین میفرماید اللهم اینک تعلم ان که لم ماکان تنافسا فی سلطان خدایا بار خدایا تو میدانی که ما هیچ تلاشی را برای سلطنت یابی برای کشور برای کشورگشایی برای اینکه حکومت را به دست بیارم در نزدم نیست ولا التماس من فبول الحکام و هیچ گونه مایل برای این که مال و اموال دنیایی به دست بیارم در این حرکت وجود نداره. بعد چی میفرماید فرماید ولیکن لنوری المغالم من دینک ولی من حرکت کردم تا که چند کار انجام شود یک لنوری المغالم من دینک تا که آموزه از دین تو را ببینم و به نمایش بگذارم و نظهر الاصلاح فی بلادک و اصلاحات را در بلاد دنیاو دنیا و زمین تو ظاهر کنم و یعمن المغلومون من عبادک و بندگان مظلوم تو در امان زندگی کنم و یعملو به فرائضک و سننک و احکامیک و به فریزه ها و سنت ها و احکام تو عمل بشود اما علیه السلام و سلام در این صحبتش که در مینا صورت گرفته است داره اهداف قیامش رو به شکل واضح بیان میکند یعنی جامعه آشرای دارای چونین اهداف باید باشد و این اهداف باید در جامعه آشرای عملیاتی بگردد تا اون جامعه، جامعه حسینی و بی باشد از نظر قرآن رسالت اصلی دین اصلاح فکر و اندیشه مردم هست اصلاح عقل و عقل بشریست پایداری و پای جوامی هم در گرو همه اصلاح طلبی و اصلاح گراییست که در سوره مبارکه خود آیه 117 چون این مسئله اونجا اشاره رفته است. و سرانجام خوب و پاداش شایسته هم از آن کسی است که اصلاحگر هست این مسئله در سوره اعراف آیه 170 ذکر شده است لذا ما علیه الصلاۃ در اول حرکتش از مدینه می‌فرماید من خارج شدم از مدینه می‌فرمایم خارج شدم تا که اصلاحات به وجود بیارم و در این صحبتش و در این سخنرانیش همچنين می‌فرماید بر این اساس امام علیه و سلام اصول مشخص و بنیادین را به این وانه هدف از این حرکت معماریش بیان میکند که این اهداف وقت تحقق پیدا کند یک جامعه میشود و جامعه آشرایی شد اولین هدفش چیست؟ بازگشت به با اصول واقعی اسلام چون اما علیه السلام می فرمایید لنور من دینیک تا که آموزه های دین به نمایش گذاشته بشود آموزه های دین کی به نمایش گذاشته شود زمانی که جامعه و اصول واقعی اسلامی خودش برگشته باشد وقت جامعه جامعه اسلامی شد او زمان آموزه های دینی معارف دینی به نمایش گذاشته می شود همون اصلاح در فکر و اندیشه هاست یعنی بانوان طلبه باید با تا به همه فرمایش اعمال صلات و سلام افکار و اندیشه های جامعهی که از جامعه آشرایی بدور شده باشد را اصلاح کند تا معالم دین خدا به نمایش گذاشته بشود تا جامعه بر بگردد به اصول واقعی اسلام و این معارف به نمایش گذاشته بشود این یک دو تحول بنیادین در وضع زندگی و معیشتی و اقتصادی مردم امام علیه سلام میفرماید و نوز هرال اصلاح فی بلادک اصلاحات در زمین تو با وجود بیاید و ظاهر بشود اینجا هم بر آلمان و اندشمندان دینی و بانوان طلبه اسلامی شیعی است که در قسمت معیشتی و اقتصادی مردم و خودشان اصلاحات به وجود بیارد تا این اصلاحات در زمین خدا ظاهر بگردند این دومین هدف و سومین هدف باس هم تحول اساسی و بنیادی است در روابط اجتماعی مردم وقت مردم با هم زندگی میکنن چطوری ارتباط داشته باشند چگونه رفت آمد داشته باشند امام علیه سلام می‌فرماید و یامن المغلومون من عبادک بندگان مظلوم تو در امان باشند یک محیط امن ایجاد بشود یک شرایطی فراهم بگردد که بندگان مظلوم خدا با آرامش زندگی کنند نه اون جامعه که پر از وحشت باشد نه اون جامعه که پر از نگرانی باشد بر این اساس در جامعه که نگرانی روی مردم حکومت میکنن و مردم نگران هستند این جامعه بیانگر این است که هنوز اون روحیه واقعی اسلامی و جامعه آشرایی در این جامعه وجود نیامده است مردمش هنوز از آموزه های آشرا بهرمند نشده است هر اندازه که نگرانهای های مردم زیاد میگردد معنیش این است که همه اندازه مردم از اصول واقعی اسلام دور شده است چرا؟ چون یک مؤمن اصلا نگران نمیشود از مردن هم نگران نیست از مسائل اقتصادی هم نگران نیست و از خیلی مسائل دیگر نگران نیست چرا؟ چون خدا یا رزق میدهد در روی زمین یا اگر رزق نداد میبرد یعنی مردم میمیرد که مؤمن اگر زنده بود وظیفه دارد بندگی خدا کند اگر مرد به رحمت خدا وصل شده است پس چه معنی دارد نگرانی؟ این در حال است که بر اساس روایات مردم به اندازه گمانشان نسبت به خداوند متعال رزق و روزی میبرند یعنی هر اندازه گمان مردم نسبت به رحمت الهی در روی زمین بیشتر باشد همو اندازه برکات الهی برای این افراد زیاد است از همین جهت است که ما در روایات داریم میفرماید شما اگر فقیر هم بودید طوری لباس بپوشید توری زندگی کنید توری رفتار کنید که دیگران فکر نکنند شما فقیر شده اید بلکه در پیش چشمی دیگران خود را سروتمند جلوه دهید و در مسائل شرعیه و حتی زکات فطره هم داره در رساله های آمده است اونجا ذکر میکند میگوید به آن اده از فقرای مؤمنی باید زکات فطره داد که در ظاهرشان خودشان را فقیر جلوه نمیدهند ولی وقتی به شهره هایشان نگاه کنید درد میکنید که واقعا زندگیشان دوچار مشکل شده است به اینها فرموده بهتر است در قدم اول زکات فطر داده بشود در قدم دوم مسائل دیگه هم مطرح است اینچونین هست بنابراین مسائل اصلاح اقتصادی مسائل در اماندن مظلومان از جمله اهداف کاربردی در نهزت اصلاح طلب آشوره و چهارمین مسئلهی که باس هم می در قیام عاشورا جستجو کرد جمله‌ای است که در نحجل البلاغه از حضرت امیر علیه السلام آمده است در اینجا تقام المقتلت من حدودک هست یعنی هر چی که از احکام خدا تعتیل شده باید اقامه بشود متاسفانه در زمان فعلی خیلی از احکام خدا تعتیل شده است برای نمونه اگر نگاه کنیم ما در عید سعید بزرگ خداوند متعال که عید غدیر باشد نمازش رو تقریبا تعطیل کردیم در ادهای دیگر در حضور معصوم نماز واجب است اما فعلا مستحب است فعلا به تنهایی میتوان خواند در زمان فعلی جهاد ابتدایی تعطیل شده است البته جهاد ابتدایی به معنی کشورگشایی نیست اسلام دنبال گشودن کشورها و فتح گوش... کشورها و در تحت تسلط و سیطره در مردم و کشورها نیست اسلام دنبال کشتن مشرکان نیست بلکه اسلام دنبال کشتن شرک است. دنبال کشتن بدی هاست که اگر بدی ها از بین رفت شرک از بین رفت او زمان هم جامعه اصلاح می شود و هم به مؤمنان افزوده می شود. ولی اگر مشریک کشته شد یک نفر مؤمن اضافه نمیشد فقط یک نفر مشرک از این رفته است. تفاوت حرکت اسلامی و حرکت حکومت مداران در این است در اوایل اسلام هم وقتی کشور صورت میگیرد این کشور گوشایی با وجودی که ده از مردم مسلمان شدن مثل کشورهای چون کشورهای فارس یا همه افغانستان ما و شما و بقیه کشورها این اگر نگیم که خوب نیست حداقل میتوان گفت که کشور گوشایی هدف اسلام نیست بلکه هدف اسلام همون اصلاح اندیشه بشر هست وقتی اندیشه بشر اصلاح شد لنرال معالمم این دینیک شد او زمان کشورها خود به خود در سیطره اسلام در و خود کشور خودشان خود را اسلامی مینمان دیگر لازم نیست مردم یک کشور را کشت یعنی کافی بود در اول اسلام آموزه های واقعی اسلام در بین مردم نشر و پخش میشد و مردم بدون اینکه کشته بشوند مسلمان میشدند این چنین بوده است بنابراین خیلی از مسائل که فعلا متاسفانه تعطیل شده است و ما داریم در زمان ظهور اما علیه و سلام وقت ظهور میفرماید او اون معطلات را اجرا می کند. از جمله مسائلی که فعلا تعطیل شده است بریدن دست سارق هست در کشور ما و شما کسی دست دوست را نبوریده کسی اون نفرای بدکار را سنگسار نزده کسی حدود الهی را اجرا نکرده است این حدود الهی اگر اجرا بشود دیگه جامعه در امن و امان سپری میکند دیگه کسی جرعت دوزدی ندارد دیگه کسی جرعت کارای بد ندارد این چنین است اینا فعلا متاسفانه تعطیل شده و در حکومت اسلامی و جامعه آشرایی تعطیل بودنش انجام میشود اقامه میشود تقامو هست یعنی برپا میشود، شود. این چونین هست. برای این است که محسن علیه السلام در جواب نامه مردم کوفه چنین می نویسد. جانم سوگند کسی شایسته امامت دارد که جز به قرآن حکومت نکند. بر هوای نفس خیش غالب باشد و خیشتن را وقف دین کرده باشد. بر این اساس وقتی ما در روایات داریم العلماء و رتت الانبیا آلمان وقت وارثان دین هست اینچونین باید باشد. اینها وقت حاکم روی زمین قرار می حکومتشان فقط بر اساس قرآن باشد هوای نفس خیش را تحت تسلط خودشان در و خودشان را اصلا در دین وقف کرده باشد. کسی که خود را وقف دین کرده باشد دیگه معنی ندارد دنبال این بگردد که اقتصاد به دست بیارد. کسی که خود را وقف دین کرده باشد دیگر معنی ندارد که این کار برای من سخت است این کار برایش سخت نیست کسی که خود را وقف دین کرده باشد دیگر برایش این معنی ندارد که اگر این کار دینی را انجام بدهم هم دیگران برایم چی میگوید؟ تنها میزند یا نمیزند مگر برای امام حسین علیه السلام کم افراد بودند که امام را از رفتن باز می داشت. حتی برادر امام حسین علیه السلام وقتی خبر شد امام علیه السلام خروج میکند و قیام می آمد محضر حضرت آقا عرضه کرد که آقا جان من از برادرم بالاخره حدیث شنیده بود شنیدم که اگر حسین به کربلا برود، حتما سرانجام شهادت است برادر بیا به این سمت حرکت نکن به جای در یک کشور دیگر برو که در امان باشه اگر در مدینه در امان نیستی در یک کشور دیگر سفر کن حتی برادر امام به امام چنین پیشنهاد میکند این پیشنهادش دلسوزانه سوزانه هست. براستی پیشنهاد برادر است براستی پیشنهادی برادری است به اندازه خودش پیشنهادی خوب است ولی به اندازه رسالت یک امام نیست کسی که خود را وقف دین کرده باشد از تعنی مردم نمی ترسد از پشنهادات مردم در او وظیفهی که برایش مشخص شده است مسیرش را عوض نمی کند این چونین هست حالا برای اینکه ما این اهداف را عملی کنیم چون تا هنوز دانیستیم که جامعه چیز طلبه و وظائف این مسائل رو در جلسات قبل پی بوردیم. کم کم داریم به آخر میرسیم. برای اینکه این اهداف را عملیاتی کرد دو تا مسئله برای همه این اهداف مهم می نماید اولین مسئله مسئله تدبیر هست تا زمانی که تدبیر نباشد هیچ گونه اصلاحات با وجود آمده نمی تواند. چون ما قبلا خاندیم نسبت به جامعه که جامعه یک سلسله مسائل عمومی و کلی دارد یک سلسله مسائل جزئی و فردی دارد که فرد فرد اعضا باید اصلاح بشوند اولین مسئله تدبیر هست در شب آشورا ممکن است شب عاشورا چون این مسئله روخ داده باشد در پشت خیمگاه امام حسین علیه السلام خندقیست یعنی گودی است امام علیه السلام چی دستورش باشد که در اون شب کنده باشد چی این خندق قبلا بوده باشد که ما آمود خیبگاهش رو در کنار همه خندق جابجا کرده باشد این بیانگر تدبیر هست چگونه تدبیر است؟ ایمان علیه السلام دستور داد هیزوم بیارد در خندق وقتی هیزوم آوردن دستور داد که هیزوم ها رو آتیش بزنند. هیزوم ها رو زدن فردا وقت جنگ صورت گرفت دشمنان خواست از پشت خیمهگاه با و امام حمله کنند دیدن آنجا خندقیست و هیزوم و هیزوم آتش گرفته لذا نتوانستند و امام از پشت حمله کنند این همون تدبیر امام هست تدبیر در مقابله تدبیر در مبارزه چون طلاب هم بنایش مبارزه بده هاست بنابراین است که اصلاحات به وجود بیار در راه مبارزه تدبیر لازم است امام علی علیه السلام خندق را در اونجا مورد توجه قرار میدهد در هم شب آشورا امام علی السلام دستور میدهد که خیمه ها را که خیمه ها از هم دور بوده دستور میدهد خیمه ها را برکنن و نزدیک هم استوار کنند بعد خیمه ها را توره نزدیک هم استوار می کنند به گونه هلال مانند و گردمانند که پشت خیمه ها به سمت هم و خندق باشد روی خیمه ها طریق هلال مانند و گردمانند باشد سمت که خود مالک علیه و سلام و اصحاب و یاران مولا الصلاة و سلام هستند در فردا وقت جنگ هم می شود کل شهدای کربلا وقت شهید میشود امام علیه علیه السلام وقت تنها میماند میرود به دشمن حمله میکند همین که از خیمگاه کمی دور میشود دوباره برمیگردد به یک نقطه ای که اون نقطه نزدیک خیمگاه است اینها همه ایشان بیانگر تدبیر هست یعنی مای طلبه چه چه آغاز و هر اصلاح طلبی تا زمانی که کارشناسی نکنند، تا زمانی که به تعبیر امروزی در خانه فکر ننشینند و تفکر نکنند، تا زمانی که در این زمینه تخصص پیدا نکنند، تا زمانی که نظریه مدریت فرهنگی و اصلاحی را آموزش ندیده باشند و برای خودشان زمینه را مساعد نکرده باشند و تدبیر وجود نداشته باشد. آوردن اصلاحات ناممکن هست. پس اول مسئله باید تدبیر یاد گرفتن باشد. دومین مسئله ای که برای همه ها لازم هست مدیریت هست. دقت گونه های مختلف مدیریت داریم. مدیریت زمان، مدیریت پول، مدیریت اقتصاد، مدیریت فرهنگی، مدیریت بحران، مدیریت اجتماع. مدیریت آموزش و های مختلف مدیریت‌ها که رشته‌های مختلفش در دانشگاهها ممکن است وجود آمده باشد. از بین این مدیریت‌ها سختترین مدیریت مدیریت بحران هست. بحران چیست؟ بحرانی نیست که آدم در یک واقعی قرار می‌گیرد که دیگه فرصت فکر کردن، فرصت تدبیر کردن رو ندارد، فرصت تدبیر رو ندارد. فرصت ایران ندارد که اندیشه کند که چه کار کند. این بحران هست. و سختتر نوع مدیریت همین مدیریت هست. مدیریت بحران. حضرت زینب سلام الله علیه ها بحران را مدیریت کرده است. با طلبه کابول کجای حضرت زینب بحران را مدیریت کرده است. سختتر نوع مدیریت. حضرت زینب در شب آشورا بود در صبح آشورا بود و بعد از ظهر آشورا هنگامی که خیمه ها آتش زده شد بود در شب شام غریبان بود در مسیر راه تا کوفه و شام تا دوباره کرد و مدینه بود و بعدها بود بود تا اینکه به بعضی از اقوال حضرتش در سوریه به شهادت می میرسد گرچه معروف آن از حضرت زینب وفات کرده است ولی گفته شده حضرت زینب وفات نکرد، بلکه شهید شده است. حضرت رو شهید کرده است. این مدیریت بحران را یک بانو انجام داده و اون حضرت زینب سلام الله بر این اساس مدیریت فرهنگی رو باید آموز، یعنی یک نفر طلبه بانوی طلبه و هر کسی که دنبال اصلاحات در اندیشه مردم هست و در کارکردهای های مردم هست باید انواع مدیریت رو آموزش داده دیده باشد ما تا هنوز چهار بنیاد از بنیادهای اصلی واقعی کربلا یادآوری کردیم اولین مسئلهش بازگشت به با اصول واقعی اسلام یا اصلاح در افکار و اندیشه ها بود برای این که طلاب خانوم بیتوانند افکار و عقاید و اندیشههای مردم را اصلاح کنند باید موارد زیر را انجام دهند. اولین مسئله که تدبیر و مدیریت بود فراگیری مدیریت فرهنگی است. باید مدریت فرهنگی را یاد بگیرند. دومین مسئله ایجاد مراکز هست. هر بانوی طلبی در هر جایی که هست حتی در درون خانهش میتواند درون خانهش را یک مرکز از مرکزهای اسلامی تشکیل دهد و ایجاد کند و با این کار هست که حداقل تعداد اندکی از اعضای یک جامعه و همسایگانش را اصلاح کرده یک مدیریت فرهنگی، دو مراکز سه دعوت دعوت به شکل مستقیم یا به شکل غیر مستقیم به شکل فرد فردی یا به شکل سخنرانی و جمعی در قرآن کریم مفاهم اطلاع رسانی شاید بیش از هشتاد فصد قرآن را تشکیل میدهد این عجیب است تا هنوز ما نمیدانم چه دیدگاهی نسبت به قرآن داشتیم ولی بر اساس تحقیقی که در یکی از دانشگاه‌های شیعی و ایمانی در ایران انجام گرفته است اونجا نوشته بود که بیش از 80 فیصد قرآن مفاهیم اطلاع رسانی را دارد یعنی مفاهیم دعوتگری چهار مسئله افشاء در جایی که مشکلات وجود دارد در جایی که نیرنگ وجود دارد بر بانوان طلب است که اصلاح افشاگری کند گونه که این مسئله افشاگری در خطبه های حضرت زینب سلام الله علیه ها در خطبه های بقیه موسرا بسیار واضح و هویداست داست پنج آموزش توسط همون مرکز آموزشی و غیر آموزشی در قسمت آموزش باید دقت کرد امروزه دنیا بسان یک توب یا یک وادی بسیار کوچک سرعت گرفته است وجود اینترنت دنیا را کوچک کرده است بنابراین آموزش هایی که ما برای دیگران می دهیم، بسیار به صورت راحت برای کل دنیا می توانیم این آموزش های خود را عرضه کنیم اگر بانوی طلبه وقتی آموزش را هدف میگیرد میتواند توسط اینترنت و فضای مجازی به کل مردمان دنیا حتی این آموزشش را بیرساند. وقتی ما امروز به دنیا نگاه میکنیم در دنیا حدود دوازده تا زبان از زبان های پرنفس دنیاست پرنفوسترین زبان دنیا زبان چینی است. بعدی زبانهای دیگه مثل انگلیسی مثل اردو مثل عربی و زبانهای دیگه پرتغالی و امثال هم هست یک بانوی طلبه برای اینکه که بیتواند در دنیا پیامش را برساند میتواند حداقل در همه دوازده تا زبان پرنفوس دنیا مطالب آموزشیش را ارزه کند این مسئله تعلیم هست و مسئله آموزش هست ششوم مجالس و سخنرانه هاست بانوی طلبه می تواند ایجاد مجلس کند ایجاد سخنرانه ها به نماید. هر کس در هر جایی که هست هر طور هم که توان دارد این مجالس خیلی مهم هست در مجالس هم باید دقت کرد که تنها خودها ها نباشد حتی دیگران رو هم دعوت کرد ویزا در مجالیسی که برگزار میکنید دنبال این نباشه که فقط خودها ها باشد نباید همگان باشد هفتم معارض و نمایشگاه هاست بعضی وقت گفتن ها تاثیر کمی دارد. نمایش دادن ها خیلی تاثیر داره. نمایشگاه ها را هم می توان به شکل حضوری و غیر حضوری برگزار کرد به شکل عکس برگزار کرد به شکل مجسم سازی برگزار کرد به شکل متنخواانی برگزار کرد. متنخواانی خودش، یکی از ویژگه است که در درون دلها نفوذ میکند البته در صورتی که این هم همراه با هنر آمیخته شده باشد حالا در این زمینه یک مطنخانی رو در ایران اجرا شده است شبا بعدا اون فیلمش هست بر حتما ببینیم اون مطنخانی چقدر اثر میگذارن بگونه ای که وقتی متنشان تمام میشوند یک باره کسانی که مرتن خوردن جام میخورند و خلقومشان پر از عشق میگردند آنجایی که دل سوزش گیرد روی فرد اثر گذاشته است. آنجایی که اشک از چشمان ریخته شود معنیش این است که قلب کم کم دارد صفا میامد آنجایی که قلب صفا یافت جامعه آشرائی یعنی اصلاح فکر و اندشه انجام میشود هشت مسابقات با ایجاد مسابقه می توان به اصلاحات افکار مردم پرداخت و اصلاحات اندیشههای های مردم پرداخت برای مسابقه اتفاقا خیلی راه های آسانی وجود دارد لازم نیست هزینه هنگفت مردم انجام دهند طلبه ها چه خانوم باشه چه غیر هزینه حزینه هنگفت کنند کتاب بنویسند کتاب رو چاپ کنند دو اندازه قیمتش در خدمت مسابقه شرکت کنندگان قرار دهد نصف قیمت قیمت کتاب، نصف قیمت دیگر جایزه و زحماتی که کشیده می شود برای این اساس، این نفر چقدر کار بزرگ کرده هم یک نویسنده رو از خود جای گذاشتن ای که ما در دین داریم می شما وقتی یک نویسنده داشته باشید فردای قیامت بین شما و بین آتش جهنم فاصله می شود این در روایت هست هم یک نوشته ازش جامانده مانده است هم مسابقه تشکیل شده است و هم توسط این فرد آموزه های اسلامی بین مردم پخش شده است و هم اندیشه های مردم اصلاح شده است این چقدر کار بزرگ است مسئله بعدی مسئله پرسمان هست پرسمان اسلامی که همون مسابقه می شود ولی پاسخ با پرسش خاص یک بانوی طلبه باید خود را در معرض پرسش های بانوان دیگر و جامعه ای که در آن زندگی میکند بگذارد نباید راحت طلب باشد کسی که دنبال آرامش هست توفیق پیدا نمیتواند امام حسین علیه السلام فرمود و خیشتن را وقف دین کرده باشد کسی که وقف دین شده باشد نمیتواند آرام زندگی کند باید به شبهاتی که ایجاد میشود پاسخ گفته بشود باید در مشکلات فکری که مردم در اندشه هایشان پدید میآید پاسخ گفته بشود و مسئله بعدی که شماره چندم شد دهم ده مسئله رسانه است روی رسانه خیلی دقت کنید چون رسانه رو بنده رشته دین و رسانه رو به اندازه کارشناسی پیک گرفتم و همه الان هم دارم ادامه میدهم این رو من درد میکنم که مسئله رسانه چیست رسانه یکی از قدرتمندترین وسائل است که امروزه در دنیا کار میره رسانه و اندازه قدرت نظامی کاربرد دارد که هیچی بلکه از قدرت نظامی کرده هم بالاتر کاربرد دارد رسانه اثرش دعوت مردم هست یعنی همکاری مردم هست وقتی مردم همکار شد کشورها همکار شد کل نیروهای امنیتی پشتبان اون شخص می شود. رسانه کارش این است رسانه یکی از قدرت های بسیار بزرگی است که امروز تجربه شده است و قدرت رسانه ای را هیچ کسی نمی تواند این کار کند حتی در واقع آشرا هم وقتی ما ببینیم رسانه شده است حضرت زینب سلام الله علیه ها وقتی سخن را این رسانه است امام حسین علیه السلام وقتی سر مبارکش قرآن میخواند این رسانه است امام حسین علیه السلام وقتی درون تنور از چهره مبارکش نور به سمت آسمان ساطع هست این رسانه است امام حسین علیه السلام در دایر راهب وقتی نور از چهره مبارکش به سمت آسمان ساطع هست این رسانه است و همه حرکاتی که در واقع آشرا و بعد از آشرا انجام شده از توسط اوسرا توسط بانوان و توسط کاروان حسینی می توان گفت یک نوع کار رسانه ای است رسانه عکس است رسانه فیلم است رسانه صوت است رسانه نقاشی است رسانه نشویه است. رسانه روزنامه هست رسانه نامه هست رسانه پیغام هست رسانه پیامک هست رسانه گروه هست رسانه کانال هست رسانه تلویزیون هست رسانه رادیو هست رسانه پادکست است و و و همه اینها رسانه کتاب هست همه اینها رسانه است رسانه از ابزار مهم و قوی است که برای اصلاح افکار مردم نقش بسیار مهمی را دارد وقت قرآن 80 فسد بلکه بیشتر از آن اطلاع است یعنی کار رسانهای پس رسانه را نباید مورد غفلت قرار داد بانوی طلبهای که میتواند در تلویزیون راه یابد باید راه یابد در رادیو راه یابد باید راه یابد سخنرانیش را میتواند نشر کند باید نشر کند. مقاله می تواند بنویسد باید بنویسد. یک روایت خطا میتواند بنویسد باید بنویسد. یک عکس از یک مجلس امام حسین می میتواند نشر کند باید نشر کند. یک فیلم کوتاه از مجلس حسینی و اسلامی نشر می کند باید نشر کند. که این کار رسانه است، در اصلاح افکار مردم و رویه مردم اثر مستقیم داریم و آخرین مسئله رو امروز یاد کنیم و تمام کنیم یازدهم مسئله دیدارها و بازدیدهاست هر بانوی طلبه که در هر جایی میرود باید رفتنش معنادار باشد ما در روایات داریم از اون فرد یاد میکند که سخنش برای مردم سبب سببساز علم میشود و این فرق کیست؟ همون طلبه هاست همون علماست مردم در زیر زبانش پنهان هست وقت صحبت میکنن آشکار میشود و طلبه باید چونین باشد هر حرفی که از دهن یک طلبه بیرون میآید جز این که اصلاحات باوجود بیارد نباید مسئله دیگه باشد اخلاقش اخلاق انسانی باشد صحبتش صحبت درست و شایسته باشد و بانوی طلبه با این کار میتواند اصلاحات در افکار را به وجود بیاورد لذا وقت در سفرها می جایی مسافرت کنید هر کسی را که میبینید بینید بعد سلام علیک تا میتوانید دین خدا را نشک کنید، برسانید. وقتی ما در این محرم میگیم مجالس ازاداره کار بردی، یعنی با این ابزاری که امروز یاد شد، از همه لحظهی که از این مجلس بیرون میشویم، شما روی دست بگیرید تا این توانایی برای شما ایجاد شود، تا این مهارت برای شما ایجاد شود، از این بابا سفرهای شما سفر متفاوت باشد در هر سفر میروید، سخنرانی کنید، صحبت کنید، پیام دهید، نامه دهید سیله رحیم کنید که سیله رحم خودش یکی از آموزه های است. هر سیله رحیمی که انجام می دهید همونجا کافیست یک روایت بخونید یک مسئله دینی یاد بدهید. با این کار می شود وقت در جای سفر می اگر عالمی و اندشمند دینی در اونجاست مردم را به سمت آن عالم سوق دهید چرا چون نظر به چهره عالم عبادت حساب می شود اگر در آنجا زیارتگاه است به زیارت بروید و مردم را به زیارتگاه ها تشویق کنید چرا آنجاها ها اصلاحگر هست؟ اگر هیچ هم نیست حداقل قبرستانی هست مردم را وادار باید کرد که به قبرستانها زیارتها رفت که هم برای گذشتگان یک و فاتحه یک خیری باشد که وقتی کسی به کسی دیگر خیری میفرستد برای خودش هم خیر هست و هم با ورود با قبرستان مردم دچار تفکر میشوند دوچار تعمل میشوند که بالاخره رفته نیست لذا ممکن است از دنیا دل برکنن اینها مهم هست و اثارات مهم دارند. همینجا جلسه امروز خش رو به پایان میبریم. اولین مسئله که بازگشت به وصول واقعی اسلام بود یعنی اصلاح در فکرها و اندیشه ها توسط همه چند تا راهکار که یازده تا راهکار که ارزش شد می شود انجام بشود حالا ممکن است راهکارهای دیگه هم وجود داشته باشد و انتظار بی شما با خارج شدن از این جلسه شخص متفاوت در کارکرد خش باشید طلبه های متفاوت در کارکرد خش باشید همه این جهات رو الله در نظر بگیریم انشاءالله تعالی و به حرمت صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و على وجه خرج صل الله عليك يا ابو عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنا عليك منا سلام الله يا بدر يا سيدنا ومولانا ان توجهنا واستجفعنا وتوسلنا بك الى الله فقد دنا بين يدي حاجاتنا يا ربي سبحان الله واليوم جئنا الله سبحان با یک مؤمن باید آرامی شش از دست دهد در شب آشورا است راوی امام سجاد هست نقل میکند من مریض بودم اما جانم داخل خیمه من بود از من پرستاره میکرد پدرم حسین رفت داخل خیمه خودش جان داشت شمشیر بابایم رو اصلاح می کرد دیدم پدرم این شعر رو دو سه بار قرائت کرد خواند یا دهر افر لک این شعر حاکی از بیوفایی دنیاست وقت بابایم این شعر رو چند بار خواند من در که بالا نازل شده ولی خود رو باز داشتم اکثر و نشان ندادم اما اما جانم زینم همین که این صدا را شنید با روی باز با ناراحتی کابیل رفت خیمه برادرش حسین صدا زد برادر جان کاش زنده نبودم تو را به وضیعت نمی دیدم آیا پدر و مادر و برادرم چه شده که به وضع افتادی حسین نگاه به خوهر فرماد خوهر جان دای شیطان سبرد را بدون ما بباید حسین فرماد اگر مرد قطار را میگذاشتن آرام در آشیا نمیخوا همینو گفت چشمان حسین فردش شد زینب سیری به غش کرد بگذار تا ببیرم تنها نبینم تنها بروی سینه سهران نبینم امشب بیام که بوزدنم بر گروی تو شاید ببیرم از غمو فرлон نبینم می میثرب سماز نگاه بگو دال انت رف دارم دار بدر نه آنجا نبینم ات الله عليك يا ابو عبد الله وعلى الأرواح التي حلّت بفنائك عليك منها سلام الله يا